زمائم فصل اول ربودن کایان در سال 192 پیش از میلاد، یک گروه مهاجم از کوچنشینان دشت پهناور به یک روستای چینی حمله کردند و زنی به نام کایان را که به سبب دانش و شاعری خود شهرت داشت، اسیر کردند. کایان وادار شد با یکی از روحسای دشت پهناور ازدواج، و در میان کوچنشینانی که نحوی زندگیشان را تحقیر میکرد زندگی کند پس از آنکه کایان دو پسر برای شوهر جدید خود به دنیا آورد سرانجام چینیان او را خریدند و آزاد کردند هنگامی که او دوباره به قوم خود پیوست مجبور شد پسران خود را باقی بگذارد کایان اثری منظوم تحت عنوان هجد سرود یک ن کوچنشین به رشتی تحری درآورده است این اشعار زندگی او را در میان وحشیان چنان که او احالی دشت پهناور را خطاب می کرد شرح می دهد. یک وحشی اهل قبیله های شمال غرب به اجبار مرا به همسری خود درآورد. او مرا به سفری به سرزمین های واقع در افق برد در امتداد جاده بازگشت ده هزار غله ابری قرار داشت بادهای کرکاننده خاک و شن را به جلو میراند احالی همانند خزندگان و مارها فوقلاد وحشی و خشن هستند آنها کمانهای خود را میکشند آنها زره بوشیده اند. آنها متکبر و بیرحمند اراده هم خورد شد قلبم شکست من سوگواری میکنم و آه میکشم من از میان سرزمین هان سفر کردم و وارد غلم روهای وحشیان شدم خانم گم شد به جسمم تجاوز شد کاش هرگز زاده نشده بودم نمدها و خزه لباس شده ضربه بر استخوان ها و گوشت من است نمی توانم تنفر خود را از طعم گوشت گوسفند بدبوی شان پنهان کنم در سراسر شب تا هوا روشن شود بر تبلهای جنگ کوبیده می شود نمی دانم آیا کسی وجود دارد که در قلب محزون من سهم شود زمین های مرزی مطروکند، برج های بیبانی بس دور است. رسوم آنها افراد پیر و ضعیف را به نفع افراد جوان و قوی تحغییر می کند. آنها در هر جا که ممکن است آب و علف وجود داشته باشد سرگردانند و در آنجا خیمه ها و استحکامات را برپا می کنند. به نظر می که گاف ها و گوزفندان زمین را پر کرده و مانند زنبورها و مرچه ها ازدهام نموده هند. هنگامی که علف تمام می شود و آب به مصرف می رسد، چار پایان و اسب ها همگی نقل مکان می کنند. من از زندگی در اینجا بیزارم. مغلان از دید دیگران پرژوالسکی سرباز روسی که در صده نوزده میلادی به مغولستان سفر کرد، شرح زیر را درباره مغولان باقی گذاشت که در کتاب چنگیزخان و امپراتوری مغل، اثر یاب ضبط شده است صورتی پهن با استخانهای برامده گونه سوراخهای گشاد بینی گوشهای بزرگ دراز گیسوی سیاه زبر ریش تنک چهرهی تیره و آفتاب سوخته و سرانجام اندامی تنومند با غدی کمی بلندتر از حد متوسط ویژگی های مشخص این نژاد چونین است اولین چیزی که یک مسافر در زندگی یک مغول مشاهده می کند، کفی فوق اوست. او هرگز بدن خود را نمیشویید و صورت و دستانش را خیلی به ندرت میشویید. به واسطه یک کسیفی دائمی او لباسهایش پر از انگل هایی است که با کشتن آنها با بیادبانه ترین طریق خود را سرگرم می کند. بیدن مغلی که پوستین یا ردای خود را باز می کند تا حشره ای موزی را بگیرد، و در میان دندانهای پیش خود بکشد منظری عادی است. ناپاکی و کسافتی را که آنها در میان آن زندگی می کنند، می تا حدی به نفرتشان از آب یا رتوبت نسبت داد. نفرتی که تقریبا به حد ترس رسیده است.